عزیزان سلام و به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. ما کتاب اول تیموتاوس رو مطالعه می‌کنیم که میشه بهش کتاب نظم کلیسایی گفت هفته گذشته ما به دعا به عنوان مهمترین وظیفه کلیسا نگاه کردیم امروز معلممون دیگه ای از نظم کلیسایی رو بررسی خواهد کرد و به غیر از اینها نقش زنان در کلیسا و وظیفه شماسان و مشایخ رو به ما خواهد گفت حالا با هم به اون گوش میکنیم حالا ما نامه رو که پولس به تیموتاوس و تیتوس نوشته بررسی میکنیم که به اونها نامه های شبانی میگیم چون این نامه ها به این دو شبان نقشه الهامی و طرح کلیسا رو میدن اکثر کلیسا کتاب راهنمای کلیسا دارن که شبان اون کلیسا باید از اون پیروی کنه این نامه‌های پولس به تیموتاوس و تیتوس، باید کتاب راهنمای تمامی کلیساها باشه. حقایق عملی و کاربردی زیادی در این نامه‌ها هستند، علاوه یه چیزی که به اون قوانین کلیسا میگن. مثلا این سخنان پولس به تیموتاوس رو ملاحظه کنید. او میگه زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد. یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید. این آیات که در اول تیموتاوس باب دو هستند، به ما دیدگاهی از این نامه میدن که پولس به تیموتاوس نوشته. نامه اول پولس به تیموتاوس رساله شبانی خانده میشه چون که خطاب به شبان جوانی نوشته شده تا اهداف کلیسا رو به او بگه و بنابراین نقشه و اولویتهای کلیسا رو به او نشون بده. وقتی که پولس این هدف و اولویت ها رو نشون میده، به بتیموتاوس میگه که خدا میخواد همه ی انسان ها نجات پیدا کنن و به شناخت حقیقت نائل بشن. از طرفی به قول پولس، خدا کلیسا رو تأسیس کرده تا زیربنایی باشه که حقیقت انجیل از اونجا اعلام بشه. وقتی که اون حقیقت اعلام میشه، همواره باید با دعا اعلام بشه. خدا میخواد همه مردم نجات پیدا کنن. بنابراین کلیسا باید به اتفاق برای همه مردم دعا کنه. بعد به عنوان اعضای کلیسا باید از کلیسا بیرون برن و در بین مردمی زندگی کنن که هنوز تبدیل نشدن خدا عطیه اونها رو و خدمت اونها رو مسخ خواهد کرد و بعد نقشه خدا اجرا خواهد شد. وقتی پولس این سخنان رو برای می نویسه نمای خوبی از انجیل به ما میده. پولس به ما میگه که فقط یک واسطه بین انسان و خدا هست. در این آیات پولس همون چیز رو میگه که ایسا در آیه شش باب چارده یوحنا گفته و پتروس در آیه دوازدهم باب چهار اعمال گفته عیسی به ما گفته که او راهی به سوی خدا هست و هیچ راه دیگری غیر از او نیست پتروس به ما گفته که هیچ نامی در روی زمین جز نام عیسی نیست که انسان بتونه توسط اون نام نجات پیدا کنه راه های زیادی برای نجات وجود ندارن فقط یک راه برای نجات هست و اون هم توسط ایسای مسیح پتروس و پولوس نجات فقط توسط عیسی مسیح امکان داره. پولوس می نویسه و به خاطر این است که من به سمت گوینده و رسول و معلم ملتها در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب شدم. حقیقت را بیان می کنم و دروغ نمی گویم. چیزی که پولوس به تیموتا میگه اینه که به همون منظور تو هم به عنوان واعز و شبان و معلم انتخاب شدی. مطالب عملی دیگری هستند که پولوس در این نامه های شبانی به اونها می پردازه. مثلا در اول تیموتاوس باب دو آیات نه تا دوازده متنی هست که پولس رو در نظر بسیاری از زنان امروزی ناخوشایم کرده. خلاصه چیزی که پولس می نویسه اینه. زنان نیز باید در طرز پوشاک و آرایش خود با وقار باشن. زنان مسیحی باید برای نیکوکاری و اخلاق خوب خود مورد توجه قرار گیرند، نه برای آرایش مو و یا آراستن خود به زیورالات و لباسهای پرزرق و برق زنان باید در سکوت و با اطاعت کامل به فراگیری مسائل روحانی بپردازند. اجازه نمیدهم زنان به مردان چیزی یاد دهند و یا بر آنان مسلط شوند. زنان باید در جلسات کلیسایی ساکت باشند. پولس اینجا نمیگه که زنان هرگز نباید تعلیم بدن بعضی از زنان عتیقه تعلیم بزرگی دارند. پولس در این نامه نمیگه که زنان نباید معجزه کنند یا نبوت کنند. او داره راهنمایی هایی میده در مورد اینکه وقتی اونها نبوت میکنن چطور باید لباس بپوشن من فکر نمیکنم که پولوس بگه زنان نمیتونن خدمت کنن اما چیزی که میگه مرتبا در تمامی رسالاتش تکرار میکنه دستورالعمل هایی برای ازدواج و خانواده وجود اون دستورالعمل اینه که مسیح سر خانه هست، مسیح سر مرد هست و مرد سر زن به همون نحوی که مسیح کلیسا را نگهبانی و شبانی میکند مرد هم باید همسر و خانوادش رو شبانی و نگهبانی کنه و مردان باید از کلیسا نگهبانی و اون رو شبانی کنند. برای نیل به این هدف پولس رسول و پتروس رسول به نمونه مسیح و کلیسا اشاره می کنند و می گن ای مردان آیا نمونه شبانی مسیح رو در کلیسا می بینید؟ بسیار خوب شما هم مثل مسیح هستید و خانوادتون و کلیسا رو شبانی می کنید همونطور که مسیح کلیسا رو شبانی کرد. بعد پولوس و پتروس هر دو میگویند که ای زنان آیا اون الگو رو میبینید بسیار خوب شما مثل کلیسا هستید اجازه بدید شوهرتون شما رو شبانی کنه و بذارید مردان خداشناس در کلیسا از شما شبانی کنند شما نمیتونید دو افسر فرمانده داشته باشید کتاب مقدس سرپرستی رو نشون میده که به معنی این هست که مسئولیت خانه و کلیسا با مردان هست. من اینو قبلا گفتم ولی باز هم میگم به نظر من بزرگترین مشکل در ازدواج ایمانداران زنی نیست که نمیخواد مطیع باشه و شبانی شوهرش رو نمیپذیره. بزرگترین مشکل در ازدواج ایمانداران مردی هست که نمیخواد مسئولیت شبانی خانواده‌اش رو طبق الگوی شبانی مسیح در کلیسا به عهده بگیره. و همون ترتیب در مورد یک شبان با سالها تجربه بزرگترین مشکل در کلیسای ما زنانی نیستند که نمیخوان توسط رهبران خداشناس شبانی بشن. مشکل مردانی هستند که این مسئولیت رو نمیپذیرند پذیرند که رهبرانی خداشناس ناس باشند که مسیح رو الگوی شبانی خودشون قرار بدن. اول تیموتاوز کتاب قوانین کلیسا هست. وقتی پولس از قوانین کلیسایی در نامه اولش صحبت میکنه کنه و می نویسه من به زنی اجازه نمی دهم که تعلیم دهد و یا بر مردان حکومت کنم. زنان باید ساکت باشند. آیا به خاطر دارید وقتی انگلیسی می خوندید چطور نمودار جملات رو ترسیم می کردید؟ اگر نمودار جملات این آیه رو ترسیم کنید، اجازه نمی نمی‌دهم زنان به مردان چیزی یاد دهند و یا بر آنان مسلط شوند، زنان باید در جلسات کلیسایی ساکت باشند، خواهید فهمید که پولوس می گه دو چیز هست که زنان نباید در مورد مردان انجام بدهند. زنان نباید به مردان تعلیم بدهند و نباید بر مسلط بشن. اگر با این تعالیم در کلیسا پیش برید، شاید به عنوان متحجر و عقب مانده تلقی بشید طرفداران تساوی حقوق یقینا وقتی این آیات رو میخونند، صدای فریادشون بلند خواهد شد حقایق کتاب مقدس نباید و نمیتونه متکی بر تعیید یا عدم تایید مردان روحانی و یا غیر روحانی باشه نگهبان یک موزه هنر در اروپا مردی رو دید که به تابلو رامبراند نگاه میکنه و سرشو میخارونه نگهبان از او پرسید آیا مشکلی با این تابلو داری اون مرد جواب داد مطمئن نیستم خیلی از این تابلو خوشم نمیاد. نگهبان گفت، اما این تابلو برای نظرسنجی اینجا قرار داده نشده. کتاب مقدس به وضوح مسئولیت رهبری خانه و کلیسا رو به مردان سپرده. عیسی شش زن و شش مرد انتخاب نکرد که رسول باشد. من معتقدم عیسی در سر کوه برای مردان موعظه کرد و رسولان مرد رو تعلیم میداد که برند و مردها رو سعید کنند. عیسی می دونست که اگر مردان رو سعید بکنند، کل اعضای خانواده از آن مرد برای پیروی عیسی تبییت خواهند کرد اگر شما حتی چندین اتوبوس پر از زنان و کودکان رو برای مسیح سید کنید به احتمال زیاد پدران و شوهران آنها از زنان تبییت نخواهند کرد در حالی که شهادت هایی که از افسران کره ای شنیدیم نشون میدند که در کشورهایی مثل کره بیشترین خادمینی که تا چندین دهه به اونجا فرستاده شدند زنان بودند شما در کره بسیاری از مردان رو میبینید که نظرشون این هست که مسیحیت دینی برای زنان و بچه ها هست. عیسی همینطور میدونست که اگر شما فقط زنان رو برای مسیح سعید کنید همسران اونها از اونها تبعیت نخواهند کرد. غالبا مردان از زنان تبعیت نمی کنند، اما زنان و کودکان از مردان پیروی می کنند. این تعلیم امروزه حتی توسط رهبران برجسته در کلیسه های پروتستان کاملا رد شده اونا میگن برخی عوامل فرهنگی هستند که باید اینجا مورد ملاحظه قرار بگیرند زنان اون موقع تحصیل کرده نبودند وقتی به متن از کتاب مقدس مثل اول تیموتاوس باب دو میرسید، باید این عوامل فرهنگی رو مد نظر قرار بدید اما به خاطر ملاحظه بعضی از عوامل فرهنگی نمیتونید حقایقی رو که کتاب مقدس در مورد نقش مردان و زنان عنوان کرده کنار بذارید کتاب مقدس برابری مطلق مردان و زنان را از نظر خدا تعلیم میده. هر جا که در کتاب مقدس تعلیمی در مورد زنان هست، میبینید که به زنان جایگاه والایی داده شده. اما کتاب مقدس برابری نقش و وظیفه را در زنان و مردان تعلیم نمیده. براساس کتاب مقدس یک مرد مرده و یک زن زن و اونها یکسان نیستن. اگر هر دوی ما واقعا شبیه بودیم، وجود یکی از ما غیر ضروری بود. کتاب مقدس میگه مردان و زنان شبیه هم نیستند. خدا انسان رو مرد و زن آفرید و, و نقش ها و مسئولیت ها و وظایف مشخصی برای هر کدام از آنها تعیین کرد. علو رغم چیزی که فرهنگ امروزی ما توصیه میکنه، خدا نقش و وظیفه یکسانی برای مرد و زن مشخص نکرده. در فرهنگ امروزی ما زنان سعی دارن با نشان دادن این واقعیت که اونها میتونن نقش و وظیفه ی مردان رو بهتر از اونها ایفا کنن ارزش خودشون رو نشون بدن. به نظر من اینطور که پیداست زنان سعی می تفاوت بین زن و مرد رو از بین ببرن. به نظر من تفاوت بین زن و مرد به جای اینکه از بین بره باید جشن گرفته بشه. چیزی که یک مرد رو برای یک زن جذاب میکنه کنه ازولانی بودن او هست. زنان از مردان زنما خوششون نمیاد. به همون ترتیب که برای زنان ازولانی بودن مردان جذاب هست مردان نیز جذب لطافت زنان میشوند. خدا وقتی انسان را خلق میکرد، جنس خونسا خلق نکرد. او ما رو مرد و زن آفرید. خدا وقتی نقش و وظایفی در خانه و کلیسا تعیین میکرد، وظایف خنسا تعیین نکرده. مرد برای به دنیا آوردن بچه خلق نشده. اگه قرار بود مردان بچه به دنیا بیارن، در یک خانواده بیش از یک بچه وجود نمی داشت. و این میتونست یک سیستم کنترل جمعیت خودکار باشه. این معنیش این نیست که زنان نمیتونن هیچ کاری در کلیسا بکنن. شاید من به نظر فناتیک بیام. اما به هر حال دوست ندارم که یک زن بلند بشه و موعظه بکنه به طوری که مردان به خاطر بددهنی او مجبور بشن به زیر نیمکتا برن. به نظرم چیزی که در این مورد هست اینه که فکر میکنم این طبیعی و معمولی نیست و یقینا غیر کتاب مقدس هست اما منظورم این نیست که زنان نمیتونن تعلیم بدن یا نمیتونن بسیاری از خدمات کلیسا رو به عهده بگیرن. کتاب مقدس میگه زنان نباید برای مردان موعظه کنن. اما نمیگه زنان اصلا نباید تعلیم بدن. اونها باید تعلیم بدن و موعظه کنن، اما نه برای مردان. به نظر من یک زن میتونه خدمات زیادی رو در یک کلیسای محلی به عهده بگیره به شرط اینکه تحت رهبری و شبانی رهبران و مشایخ کلیسا باشه. این در مورد مردان هم صدق میکنه. به عنوان یک شبان من هر کاری که انجام میدم تحت نظارت مشایخ هست. من اون رو به طریق دیگری انجام نمیدم. هیچکس در کل کلیسا نیست که تحت رهبری و نظارت مشایخ نباشه. بنابراین من دلیلی نمیبینم که چرا یک زن نمیتونه شبان یک کلیسای محلی باشه. تا زمانی که او تحت اطاعت رهبران هست، او هم مانند شبانان مرد تحت اطاعت رهبران میتونه خدمت بکنه. به مطلب مهم دیگری در این نامه های شبانی میرسید در اول تیموتاوس شما تعالیم بیشتری در مورد صلاحیت خواهید دید. مسئولیت و نقش کسانی که در این رساله های شبانی از آنها با نام مشایخ یاد شده، در اجتماعات مختلف و در اجتماعات کلیسایی ما با طرز برداشتمون از این مسائل از همدیگر تفاوت داریم. اگرچه من به کلیسای مشایخی وابسته نیستم، اما معتقدم که کلیسه های در مورد تعریف نقش‌های مختلف روحانی رهبران بسیار کتاب مقدسیتر هستند. مشایخ در کتاب مقدس انگلیسی گاهی با کلمه اسقف شبان، مباشر یا کشیش توصیف شدن. وقتی که شما به کلمه مشایق برمیخورید اون به نوعی همان کلمه شبان هست. مفهومش کسی هست که گماشته شده تا مسئولیت و مباشرت بدن مسیح رو به عهده بگیره. بنا به گفته کتاب مقدس سرپرست کلیسا مسئولیت مباشرت شبانی و هدایت گله خدا را به عهده دارد در بعضی از جوامع این سرپرست اسقف تمام و منطقه هست. در بعضی از جوامع او شبان یک کلیسا هست. در بعضی از جوامع مثل کلیساهای مشایقی شاید ایده زیادی وجود داشته باشند که مسئولیت نگهبانی از گله رو به طور مشترک به عهده دارند در بین اون مشایق شخصی هست که در بعضی از ها به او شبان میگن بر اساس تعالیم کلیساهای های مشایخی شبان شیخی هست که تعلیم میده مشایخی در کلیساها هستند که نظارت میکنند شبانی میکنند اما تعلیم نمیدن اونها مععزه نمی کنن. و بعد مشایخی هم هستند که مععزه میکنند و تعلیم میدن هر بار که با این کلمه در عهد جدید برخورد میکنید اونو به صورت جمع میبینید یک کلیسای محلی بر اساس که در این نامه های شبانی میبینید چند شبان داره، نه یک شبان، بلکه شبانان، نوع دیگر معمور کلیسا شماس هست. شماس یک خادم هست و در کلیسا خدمت میکنه، شاید در مسائل روحانی خدمت بکنه و شاید هم در کارهای خدماتی. اونها شاید افراد عمیقاً روحانی باشند و کارهای روحانی بکنند. اما مسئولیت اداره و نظارت رو ندارند. گاهی به کسانی که جز مشایخ هستند و مسئولیت نظارت رو دارند شماس هم گفته شده. کلمه شماس گاهی با کلمه خادم ترجمه شده. کلمه شماس گاهی به کلمه خادم ترجمه شده. در کتاب مقدس به پولس به عنوان شماس اشاره شده و به عیسی مسیح نیز به عنوان شماس اشاره شده. شما این نوکارکنان رو در کلیسا دارید و در اعمال باب بشش برای اولین بار بر روی آنها تمرکز شده. وقتی کسانی که خاندگی اونها شبانی بود مثل رسولان در برنامه تهیه قضا برای مردم خدمت می تصمیم گرفتن عده شماس انتخاب کنند. بعد وقتی که اون شماسان انتخاب شدند رسولان به اونها گفتند شما این مهم را انجام دهید و ما خود را به عبادت و خدمت کلام خدا خواهیم سپرد. در اون زمان خدا به اون تصمیم برکت بزرگی داد. من معتقدم که این الگو از همان زمان شکل گرفت و از آن به بعد شما دو نوع خادم در کلیسا دارید. شبانان را دارید مثل رسولان که اساسا شبان هستند و در خدمت روحانی مشغولند و بعد رهبران مسائل عملی رو دارید که خادم هستند. اونها گاهی در مسائل روحانی خدمت میکنند و گاهی در مسائل عملی مثل تهیه غذا. اما اونها به هیچ وجه مسئولیت نظارت و اداره کلیسا رو ندارن. به این دو نوع خادم در کتاب قوانین کلیسا مثل اول تیموتائوس و تیتوس هم اشاره شده برای این کارکنان کلیسا صلاحیتی در نظر گرفته شده یکی از دلایلی که چرا بعضی از کلیساها امروزه ضعیف هستند به این دلیل که ما از مدت ها قبل از اعمال میارهای خاص پذیرفتن اعضا و حتی میارهای انتخاب خادمین برای کلیساها دست برداشتیم اگر ما اول تیموتائوس و تیتوس رو بخونیم و ببینیم که در نسل اول کلیسا میارهای انتخاب یک رهبر برای کلیسا چی بوده و اون معیارها رو مد نظر قرار بدیم و بر اعمال اونها پافشاری کنیم خواهیم دید که تعداد رهبران در کلیساهای امروزی به شدت کاهش خواهد یافت اما کلیساهایی که اون معیارها رو اعمال کرده کلیسه کلیساهای قوی با مبانی مستحکم هستند که حقیقت انجیل میتونه توسط اونها اعمال بشه کسانی که خودشون رو واجد شرایط رهبری کلیسا میبینن باید کسانی باشند که مانند مسیح با فیض خدا زندگی میکنن. مهمترین روشی که کلیسا انجیل رو به هر نسلی اعلام میکنه توسط طرز زندگی رهبران و اعضای اون کلیسا هست. من تمام کسانی رو که جز رهبران کلیساهای محلی هستند به چالش میکشم که با دقت و همراه با دعا معیارهای یک رهبر رو از این دو نامه شبانی پولس بخونن و از خدا بخواند که به اونها فیض بده تا اون معیارها رو برای رهبری در زندگی و کلیسای محلی برای جلال خدا به کار بگیرن. در این دو نامه پولس بر این واقعیت تاکید کرده که رهبران کلیسا که مشایخ نامیده میشن باید به لحاظ روحانی بالغ و رهبرانی شایسته باشند. شرایط زیادی برای این رهبران قید شده چیزی که غالبا سو تفاهم میشه اینه که میگن شوهر یک زن تصور کنید که شما خادمی بودید که به یکی از اون شرایط فرهنگ چند ملیتی میرفتید و قصد داشتید در اونجا کلیسا کنید. تصور کنید شما انجیل رو موعظه میکنید و مردم واکنش نشون میدن و ایمان میارن. چیکار میکردید اگر بسیاری از اون مردانی که ایمان آوردن چند همسر داشتن؟ اگر شما این معیار رو طوری اعمال میکردید که گاهی امروزه اعمال میشه، هرگز نمیشد از اون نسل رهبران واجد شرایطی در کلیسا انتخاب کرد. شوهر یک زن عملاً به معنی یک مرد و یک زن هست. یا مردی که یک زن داره. من فکر نمیکنم که این به این معنی باشه که این مرد هرگز نمیتونه زن دیگری داشته باشه. غالبا این به صورت غلط تصویر میشه. به عبارت دیگه معنیش نیست که او نباید قبلا هم بیش از یک زن داشته باشه. در فرهنگ ما شماسان نباید بعد از ایمان آوردن و قبل از ازدواج فعلیشون طلاقی داشته باشند. از این گذشته همسر شماس هم بعد از ایمان آوردن نباید زن مطلقه باشه. اگر او با زن مطلقه ازدواج کنه نمیتونه یک کلیسا رو اداره کنه اگر شما این دیدگاه رو داشته باشید و اگر این تعالیم رو در زبان اصلی مطالعه کنید متوجه میشید که این عبارت یک زن یک مرد به زمان حال مربوط میشه یعنی در حال حاضر یک مرد نمیتونه بیش از یک زن داشته باشه وقتی که به شرایط انتخاب شماسان نگاه میکنید ملاحظه کنید که معیار های انتخاب شمساس بسیار بالاتر از میار انتخاب رهبران است شرایتی هم که برای زنان این رهبران روحانی در نظر گرفته شده بسیار بالاتر از شرایطی هست که برای همسران شماسان و مشایخ در نظر گرفته شده. هدف اولی نامه پولس به تیموتائوس رو به خاطر میارید؟ اون هدف این بود که ما شرایطی رو که یک مرد خدا که کلیسای خدا رو اداره میکنه باید داشته باشه بدونی. وقتی که شرایط رهبران و مشایخ و شماسان و همسران اونها رو میخونید، در واقع مهمترین بخش از اون نامه رو میخونید. اگر چه ممکنه جالبترین ترین به دنیا نباشه در این نامه پولس به تیموتائوس درباره ارتداد هشدار میده در کتاب داوران ما در مورد ارتداد خوندیم معنیش این هست که شما از ایمانی که قبلا داشتید برمیگردید پولس پیش بینی میکنه که در ایام آینده ارتداد بزرگی خواهد بود حالا در زمان اون نامه ها روح معکدن میگه که عده ای از ایمان خواهند افتاد و در دام روحهای فریبنده و نظرات شیطانی خواهند افتاد این سخنان رو در باب چهار آیه یک اول تیموتاوس میبینید. همونطور که میبینید ارتداد در دو بود میاد. ارواح فریبنده و تئوریهای شیطانی. ارواح فریبنده عبارت جالبی هست. اون عبارت میگه که هر روحی روح القدس نیست. بسیاری از مردم این رو نمیفهمن. اونها مصمم هستند که چیزهای روحانی رو تجربه کنن. چیزی که طبیعی و معمولی نیست به محض اینکه اونها با چیزی در دنیای روح ارتباط برقرار می کنند که طبیعی نیست تصور می کنند که با روح القدس مرتبط شدهاند. اونها خودشون رو در مقابل هر روحی در دنیای روحانی باز میگذارند و نمیدونند که روحهای شریر فریبند در دنیای راهانی وجود داره. این روحهای گمراه کننده میتونند عملا مردم را از ایمان به مسیح گمراه کنند. دومین نوع ارتداد رو پولوس نظریات شیطانی خانده کلمه نظریات که در اینجا آمده به معنی تعالیم هست. تعالیم کلیسایی چیه؟ نظریات و تعالیم کلیسایی چیزیه که در کلیساها تعلیم داده میشه و همیشه باید بر مبنای کتاب مقدس باشه. پولس تیموتاوس شبان جوان رو در رابطه با تعالیم تشویق میکنه که منظور پولس همان تعالیم کتاب مقدسی هست. او میگه مراقب خود و تعالیمت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن چون به این وسیله هم خود و هم آنانی را که به تو گوش میدهند نجات خواهی داد این آیه در باب چهار اول تیموتاوس هست این توصیه بزرگ شبان ارشد به شبان جوانتر تیموتاوس هست تعبیر و خلاصه چیزی که پولس به تیموتاوس میگه چنین چیزی هست تیموتاوس زمانی هست که تو باید به باشگاه اولمن ملحق بشی زمان ملحق شدن به باشگاه اولمن زمانیه که ساعت پنج صبح بیدار میشی و کلام خدا رو باز میکنی وقتی این کار رو میکنی مراقب خودت و تعالیمت باش زندگی خودت رو با کلام خدا بسنج کلام خدا رو پایین بذار و زندگی خودت رو به حضور خدا بلند کن تو به این کار ادامه بده چون اگه دائما این کار رو بکنی هم خودت و هم دیگران رو نجات خواهی داد. نظریه ای هست که میگه شما نمیتونید کسی رو نجات بدید مگر اینکه اول خودتون رو نجات بدید. بر اساس همین نظریه شما نباید به گلتون چیزی تعلیم بدید که خودتون در زندگی شخصی تجربه نکردید. این نصیحت بسیار خوبیه. این نصیحت ابزاری هست که به تیموتائوس کمک میکنه خودش نجات رو تجربه کنه و برای نجات دیگران تجهیز بشه. تعالیم ما از کلام خدا هست. کلام خدا تعلیمی هست که ما باید در کلیسا موعظه کنیم و به مردم بیاموزیم. البته شریر نمیخواد این رو توصیه کنه بنابراین نظرات شریران هم خواهد بود نظریات شریر در کتاب مقدس وجود نداره مردم به چیزهای زیادی معتقدند که در کتاب مقدس وجود نداره قوم خدا نباید تصمیماتی بر مبنای چیزهایی بگیرند که خارج از کتاب مقدس است اولویتهای قوم خدا هرگز نباید بر مبنای فرضیاتی باشه که به با اونها باور باوردارن اما طبق کتاب مقدس نیست پولس این نوع ارتداد رو نظریات شیطانی میگه. پولس نصیحتهای عمیقی به تیموتاوس میکنه. اونجایی که مینویسه اگر میخواهی ورزش کنی، خود را در خداپرستی تقویت کن. زیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خداپرستی از هر حیث فایده دارد چون هم برای حال و هم برای آینده وعده حیات دارد. این امکان هست که تیموتاوس هم مثل هر مرد جوانی کار بوده و زمان زیادی رو صرف بدنسازی می کرده پولس به او می گفت این مهمه متعوض اما برای زندگی کنونی ارزش داره اما من به تو میگم که تو واقعا بیشتر کجا باید ورزش کنی خودت رو در خداشناسی ورزیده کن چون این هم در این زندگی و هم در زندگی آینده به تو کمک خواهد کرد تا آمدن من بر خواندن کلام و موعظه و تعلیم تمرکز کن. از عطیه ای که برای اعلام کلام خدا به تو داده شده زمانی که بر تو دست گذاری شد قفلت نکن تمام توجه و تمام قدرت خودت رو صرف این چیزها بکن تا اینکه رشد تو بر همگان آشکار بشه تیموتاوس وقتی که انتخاب شد آشکارا تجربه ای داشته مشایخ بر او دست گذاشته بودن. اینجا نتیجه گرفته شده که وقتی مشایخ بر تیموتاوس دست گذاشتند اتفاق روحانی زیبایی برای تیموتاوس افتاده چیزی به او انتقال یافته یکی از استادان من میگفت وقتی شما بر کسی دست میزارید تنها چیزی که انتقال میدید میکروب هست استاد پیر من باور نداشت که وقتی مشایخ بر کسی دست میگذارند چیزی عمیقاً روحانی به او منتقل میشه من با این استادم موافق نیستم چون که اینجا در این رساله پولس به تیموتاوس اینطور پیداست که وقتی مشایخ بر تیموتاوس دست گذاشتند او اتفاقی روحانی رو تجربه کرده. پولس گفته نسبت به عطیه روحانی خود بی توجه نباش عطیه ای که در وقت دستگذاری تو به وسیله رهبران کلیسا همراه با نبوت آنها به تو داده شد من فکر میکنم او به همان عطیه اشاره میکنه وقتی که می این چیزها را به عمل آورد و خود را وقت با آنها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد پولس حرف هم در مورد رابطه ی تیم تاوس با مردم در بدن مسیح او اوزده آیا یک شبان باید رابطه‌ای حرفه‌ای در کلیسا با مردم داشته باشه؟ پولس به تیموتائوس میگه یک شبان نباید با مردم رابطه‌ای حرفه‌ای داشته باشه. او به می مینویسه مردی را که مسنتر از تو هست سرزنش نکن بلکه طوری نصیحت کن که گویی پدر توست. با جوانان مثل برادران و با زنان پیر مانند مادران و بعد اضافه میکنه با زنان جوان مثل خواهران خود با کمال پاکدامنی رفتار کن. پولس به تیموتاوس میگه با قوم خدا طوری رابطه برقرار کن که گویی همه اونها اعضای خانواده تو هستند. پولس قطعا به تیموتاوس نمیگه که با مردم رابطه ای حرفه برقرار کنه. وقتی که به باب پنجم اول تیموتاوس میرسید اونجا متن جالبی در مورد بیوه زنان هست. تعلیم ملزم کننده پولس در مورد بیوه زنان این هست که ایمانداران باید از بیوه خودشان مراقبت کنند. به این منظور پولس به تیموتائوس مینویسه مشکل بیوه زنان را اینگونه حل کن. به مردم بگو که پاکی از خانه های آنها شروع میشه. بنابراین هر مردی باید از بیوه خودش مراقبت کنه که به معنی مادر و مادر زن هست. اگر کسی وسائل زندگی خیشاوندان و مخصوصا خانواده خود را فراهم نکند ایمان را انکار کرده و بدتر از کافران شده است. به نظر پولس چنین مردی حق نداره خودش را ایماندار بدونه. اگر او بیوه های خانواده خودش مراقبت نمیکنه، کنه نمیتونه خودش رو ایماندار بدونه در بسیاری از فرهنگ های امروزی که حتی مسیحی نیستند اونها از بیوه های خودشون مراقبت میکنن عملا میبینید که نسل دوم و سوم با هم یک یکجا زندگی میکنن چون به وضوح معتقدند که این طرز درست زندگی هست. در بعضی از فرهنگ های امروزی اینطور نیست اونها خانه های سالمندان دارند چون که به نصیحت پولوس عمل نمیکنند من نمیگم که بودن در خانه سالمندان چیز بدیه شاید اونها خودشون به خاطر مراقبت های پزشکی دلشون بخواد که اونجا باشن اما این چیزیه که باید به دقت مورد ملاحظه قرار بدیم اگر ما کاربرد این تعالیم رو که پولوس به تیموتاوس میده درک کنیم این میتونه تاثیر به سزایی در برنامه های رفاهی ما و بافت خانه های سالمندان ما داشته باشه اگر کسی وسایل زندگی خویشاوندان و مخصوصا خانواده خود را فراهم نکند، ایمان را انکار کرده و بدتر از کافران شده است. پولس تعالی در خصوص مشایخم به تیموتاوس میده که بسیار مهم هستند. او در مورد اهمیت ماندن مشایخ در معیارهای بالای موقعیت رهبری تاکید میکنه اولا او می نویسه هیچ ادعایی علیه یکی از رهبران را نپذیر مگر آنکه به وسیله دو یا سه شاهد تعیید شود. این بسیار مهمه وقتی که کمونیست ها به کلیسای در چین حمله کردند اونها از هر ده نفر یکی را چون که معلوم بود که کلیسا این نامه شبانی پولس رو تعلیم نداده بود کمونیست ها وقتی وارد کلیسا شدند به کلیسا آزار نرسوندند چون که اونها تاریخ کلیسا رو میدونستند کمونیست ها میدونستند که خون شهید بذر کلیسا هست. کمونیست ها میدونستند که هرگاه کسی شهید میشه کسانی به جای او برمیخیزند بنابراین کمونیست ها تصمیم گرفتند که هیچ کس شهید نشه کمونیست به درون اون کلیسا رخنه کردند و بعد به ترور شخصیت رهبران کلیسا پرداختند کلیساهای چین توسط خادمینی تأسیس شدند که اول تیموتاوس را درک نمی‌کردند اگر درک می‌کردند کمونیستها نمی‌توانستند اونقدر گذار باشند این خلاصه و چکیده چیزی هست که پولس در باب پنجم اول تیموتائوس میگه هیچ ادعایی را علیه یکی از رهبران نپذیر مگر که به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود این دو دلیل دارد اگر حقیقت داشته باشه ما معتقدیم که یک رهبر مردی روحانی هست و بالاخره از گناهش توبه میکنه و اگر حقیقت نباشه ما مدیون هستیم که نام او رو پاک کنیم پس شما نمیتونید چیزی با اطمینان در مورد یک رهبر بگید در این متن پولس به تیموتائوس میگه که اگر رهبری گناه کرد که در واقع هر کسی مرتکب گناه میشه باید در مله عام توبیخ بشه چون که خدمت اونها عمومی هست. این تاکید شگرفی بر معیارهای رهبر بودن هست اگر رهبری در مله عام توبیخ شد همه متوجه خواهند شد که ما رهبرانمون رو به معیارهایی که داریم ملزم می‌کنی همه خواهند فهمید که وقتی ما میگیم معیاری هست باید رهبران هم از اون تبعیت کنن و در حرف خودمون جدی هستیم پولس به تیموتائوس هشدار میده که نباید در مورد انضباط کلیسایی از کسی جانبداری بکنه حتی اگر رهبر توبیخ شده دوست شخصی تیموتاوس هم باشه پولس به او میگه اگر رهبری گناه کنه باید توبیخ بشه در اون متن پولس ضرورتا نویسه در دستگذاری کسی برای خدمت خداوند عجله نکن و در گناهان دیگران شریک نباش خود را پاک نگهدار اینها برخی از مطالبی هستند که شما در کتاب قوانین کلیسا یا رساله پولس به تیموتاوس پیدا می کنید این نامه های شبانی به تیموتائوس در مورد وظائف و اهداف کلیسای عیسی مسیح تعلیم می دن. دوستان چی می اگه همه کلیساها میارهای کتاب مقدسی رو برای اعضا و رهبری اعمال میکردند هزار و اعضا به احتمال قریب به یقین کاهش پیدا میکردند و کلیسا اون وقت کوچک و حتی ضعیف به نظر می رسید با این حال خدا می این میارهای اصیل در کلیساها مراعات بشه نقشه خدا اینه که کلیساهای ما و مخصوصا رهبران ما دهنده نیکوکاری و زندگی پاک باشند. دعای ما اینه که این درس ها برای شما و کلیسای شما برکتی باشه و اگه کلیسایی ندارید میخواییم شما رو تشویق کنیم که کلیسای محلی پیدا کنید تا بتونید با برادران و خواهران رابطه دوستانه داشته باشید. کلیسا به شما نیاز داره و شما به کلیسا. تا برنامه بعدی دعا می کنم آرامش و برکت خداوند توسط روح قدوسش بر شما قرار بگیره و از شما استفاده کنه تا برکتی برای دیگران باشید.